آنا چهارشنبه هفت آگست آگسته 2013 صبح من با دخترای انسیتی بودم وقتی که اون اتفاق افتاد. نشسته بودیم جای همیشگیمون کنار پنجره. بچه ها رو همه جا پخش کرده بودن. بف سعی میکرد دوباره ترغیبم کنه تا به باشگاه کتابش ملحق شم. و بعدش دین سرکلش پیدا شد. نگاه شبیه نگاه خود مهم پندارانه کسی بود که بخشی از شایعه بی اساس و بخصوص خصوص داغی رو در اختیار داره. به سختی میتونست جل خودش رو بگیره. در حال که تلاش میکرد از بین درک ارمش رو بریزه. با چهره جدی گفت آنا اینو دیدی؟ و روزنامه رو باز کرد و تیتر اولشو نشونم داد. آیا مگان قاتل بود؟ قاتل بچه؟ من گنگ شدم. فقط زول زدم به روزنامه. یهو به شکل مزهگی اشکام ریخ. ایو وحشت زده شده بود و دادو قال می کرد. این نشونه ترسه. رفتم دستشوی تا صورتم بشورم و ایو رو هم بردم. و وقتی برگشتم همه در حال حرف زدن بودن اما یهو ساکت شدن. در یه نگاه خوش به من و پرسید. تو حالت خوبه خانم گله؟ میتونم بگم از این وضع لذت می برد. من باید می رفتم. اونجا بمونم. اونا همه به طرز وحشتناکی نگران شده بودند و میگفتن چقدر این وضعیت باید برای من ترسناک باشه اما تونستم تو صورتشون یه ذره عدم رضایت از خودمون ببینم چیزی مثل اینکه بگن چطور تونستی بچه خودتو به چه حیولایی بسپاری تو باید بدترین مادر دنیا باشی توی راه خونه سعی کردم به تام زنگ بزنم و تلفنش راست رفت و پیغام گیر براش پیغام گذاشتم که هرچی زودتر به زنگ بزنه سعی کردم صدام روشن و صاف باشه اما داشتم میل ارزیدم و پاهام رشه داشت متزلزل روزنامه نخریدم اما نمیتونم در مقابل خوندن آنی این ماجرا مقاومت کنم. اینجوری ابهامش بیشتر میشه اتهامی با این ادعا مطرح شده منابع نزدیک به پرونده هیپول بیان کردن که ممکن است ده سال قبل مگان در قتل فرزندش دست داشته باشد. این منابع همچنین فکر میکنن که این میتواند انگیزه برای قاتلش باشد گسکیل بازرسی که کل این پرونده را بر عهده دارد و از زمان گم مگان ما را در جریان کم و کیف پرونده گذاشته در این بار نظری نداده تام به هم زنگ زد اون وسط جلسه بود و نمیتونست بیاد خونه. سعی کرد آروم هم کنه گفت تمام اینا فقط هیاهوس به هم گفت احتمالا میخواستن یه جورایی پلیس تحت فشار بذارن. ارزش نداره در هر صورت ارزش نداره بعد بدونی که نمیشه نصفین چرندیاتی رو که روزنامه ها باور کرد من خیلی نق نزدم چون اولین بار اون بود که داد مگان بیاد و تو کار ایف کمک کنه تا باید احساس وحشت داشته باشه حق با اون بود حتی ممکنه حقیقت نداشته باشه اما کی دوست داره همچین داستانایی رو ترک کنه چرا باید همچین چیزی بسازه؟ نیازی نیست خیلی فکرم و به کار بندازم تا به این نتیجه برسم میدونم همیشه میدونستم چیزی تو وجود اون زن هست اول فکر میکردم فقط یکم بی تجربه است. اما بیشتر از این حرفها بود. اون یه جورایی پریشون خیال بود، خود درگیر بود. نمیخم دروغ بگم. خوشحالم که رفته. خب، خلاص شد. عصر من طبقه بالام، توی اتاق خوابم. تام داره با ایف تلویزیون نگاه میکنه. ما با هم حرف نمیزنیم. تقصیر من بود. تام رفت سمت در و من فقط دنبالش رفتم. تمام روز ذهنم درگیر بود. نمیتونم این موضوع رو حل کنم. نمیتونم ازش فرار کنم. هر جا رو نگاه میکنم زن اونجاست. اینجا تو خونم در حال نگه داشتن بچم قضا دادن بهش، عوض کردنش، بازی کردن باهاش در حال که من مشغول چرت زدم بودم. چندین بار به اینکه ایو ایف رو با اون تنها گذاشته بودم فکر میکنم و حالم بد میشه و بعدش بعد بینی میاد سراقبم حسه این که تمام مدتی که تو این خونه زندگی کردم تحت نظر بودم اول قرار گرفتن تو مسیر قطارا تمام این بدنای های ای که از پنجره ها زل میزنن بیرون درست زل میزنن به ما فکرش تنم و مور مور میکنه. یکی از چندین دلیلی که من اوایل نمیخواستم از اینجا برم این بود که تام نمیخواست اون گفت اگه بفروشیم خیلی ضرر میکنیم. اول قطارا و بعد بعدریچل. ریچل به ما نگاه میکنه، تو خیابون میچرخه، مدام بهمون به زنگ میزنه و بعدشم میگان. وقتی با ایو اینجا بود، همیشه احساس میکردم نیم نگاهی به من داره. گرچه اون پدر مادرمو برانداز میکرد، منو برانداز میکرد، قضاوتم میکرد که میتونم از عهده خودم بر بیام یا نه. مسخره است. میدونم. بعدش به روزی فکر میکنم که ریچل اومد خونه و ایو برداشت و تمام بدنم یخ کرد در هر صورت فکر نمی کنم این فکر را مسخره باشم. بنابراین وقتی تا اومد خونه من حلاک رو انداختن بودم. باش اطمام حجرت کردم و گفتم باید از اینجا بریم. هیچ راهی وجود نداره که منو توی این خونه بند کنی توی این خیابون. وقتی میدونی همه چیز اینجا از دست رفته. هر رو که نگاه می کنم، نه فقط ریچل رو می بینم حالا دیگه میگانم اضافه شده. من باید به هر چیزی که اون لمس کرده فکر کنم، غیر قابل تحمله. گفتم برای مهم نیست جایی که میریم قیمت مناسبی داشته باشه نه. اون کاملا معقولانه گفت، تو برات مهم نیست ما زور بزنیم یه جایی خیلی بدتر زندگی کنیم وقتی پول واممونو ندادیم؟ گفتم که شاید بتونه از والدینش کمک بگیره اونا خیلی پول دارن. اما گفت نمیخواد از اونا بگیره که هیچ وقت هیچ چی از اونها درخواست نمیکنه و بعدش عصبانی شد گفت نمیخواد راجب این موضوع بیشتر از این صحبت کنه چون وقتی اون ریچل رو به خاطر من ترک کرد پدر و مادرش تهدیدش کردن من نباید اسم اونا رو می آوردم این همیشه گم میزنه به اخلاقش اما من چیکار کنم خب چقدر بدبختم من حالا هر بار که چشامو میبندم میبینمش که نشسته اینجا پشت میز آشپز خونه ایو رو دامنشه داره باهاش بازی میکنه و لبخند میزنه و براش صدا در میاره اما اصلا به نظر نمیرسه واقعی باشه هیچ وقت به نظر نمیرسه که انگار اون واقعا دلش میخواست اینجا باشه همیشه همیشه وقتی موقع رفتن میشد خوشحال به نظر می رسید. وقتی ایو میداد بغلم خوشحالیشو حس میکردم انگار بغل گرفتن بچه رو دوست نداشت